باریام سهم شهدا باشه از اینجا بره بعد یه این باز شده ببین روزی دیدم مالش است حرم از این خبر آماده است <تصفيقا> <تص بنات فاطمه را بنات فاطمه را سخت استرام فاطمه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> را <تصفيق> سخت استراب گرفت و میخوام این شب آخریت یه اسمی ببرم که مربوط میشه به روزه عباس بابن هوایج عباسی یه اسمی میخوام ببرم هرم از این خبر آباده یه شد بنات فاطمه سخت استراب گرفت به گاهوار علی ناله ای <تصفيق> به علی ناله ای کشید سه دل که صبر و تاقت تو آرام از رباب می بگم میخوام اینجا میت از روباب بگم سوالال روباب بگم صدا علی سه دست گریه و پیچارگی داد ز دست گریه و بیچارگی داد ز بیابی اتش غم گریه فریاد علی باید بسوزیم و بسازیم علی باید به سوزی به بساززی عمور از دو ناد هییت بیت و زهرا سلام الله عل ها بیتیزR.